پیوسته خراباد، زرندان خوش باد در دامن زهد زاهدان آتشباد، آن درق و صد پاره و آن صبح کبود، افتاده به زیر پای دردی باد تا چند اسیر رنگ و بو خواهی شد، چند دسته پی هر شد گر چشمه شد، گرچشمه زمزمی و به حیات، آخر به دل خاک برو خواهی شد. تا یار شراب جان پزایم ندهد، صد بوسه فلک بر سر و پایم ندهد، گویند که توبه کن اگر وقت آید، چون توبه کنم تا که خدایم ندهد. چون مرد شوم خاک مرا کم سازید، بهبال مرا و مردم سازید، خاک تن من به باده آغشته کنید، و از کال بادم خشت سر خم سازید.